صفحه دویست و و بخشیدن و خوبی کردن با بدکاران در فرهنگ جاوید نبود، به ویژه بخشیدن بدکاری چون ملک آرا، با ملک آرا کوچکترین ندیده گرفتن و بی اهمیتترین سهلنگاری هم گناه جبران ناپذیر بود. اهریمن را نباید بخشید، به اهریمن مهر و دلسوزی نباید کرد و با اهریمن آشتی ناسزاترین کارهاست. بدبختانه سوگند خورده بود، مدتی با ملک آرا سازش کند، مدارا کند، او را در اینجا نگه دارد تا روزی که افسانه پیدا شود، بعد از آن سوگندش به ملک آرا پایان میافت، از آن ساعت انتقام خون آغاز می شود. روز بعد همه چیز در خانه عادی بود، لیلا و شاهباجی چیزی نفهمیده بودند. جاوید از ابزار و اسباب خانه خیلی کم و از لوازم آشبسخانه بزرگ هم خیلی کم و پراکنده برده بود که کسی متوجه نشود. در نظر داشت سایر چیزهایی را که ملک آرا خواسته بود به مرور از بازار بخرد برایش ببرد. او نمیدانست ملک آرا چند روز میخواست در سرداب مخفی باشد. لابود ملک آرا خودش هم نمی دانست. گفته بود. اوضاع داغ فعلی سرد شود سر و صدا بمیرد این ممکن بود یک هفته باشد ممکن بود ماه طول بکشد بیشتر ساعت های صبح و بعد از ظهر را دور خانه ماند باغ بزرگ همچنان خالی و سوت و کور بود در این حیات زندگی لیلا و شاهباجی با ولنگاری و شلختگی می گذشت کشیک پاسبان خسته و چرتالود جلوی در باغ روزی دو مرتبه عوض میشد تمام تکیه و محله هم زندگی عادی خود را ادامه میدادند خبر اقدام به دستگیری ملک آرا و ضبط و توقیف و محرموم شدن خانه و دارایی ملک آرا زندگی محله را مختل و دگرگون نکرده بود همان آدمها و همسایه ها و کسبهایی که تا دیروز مجیز ملک آرا را میگفتند و دست به سینه‌اش بودند امروز به ملک آرا نفرین می کردند، به او فوش می دادند و دولت و قدرت تازه را دعا می گفتند و از کارهای بد ملک آرا افثانه ها تعریف می کردند. نزدیک غروب جاوید به بازار رفت. و مقدار دیگری خرت و پرت و قضا و هرچه چه ملک آرا خواسته بود خرید و آنها را آخر شب در ساعت معین بدون اینکه لیلا و شاهباجی بفهمند به سرداب ملک آرا برد. دریچه آبنبار و دریچه سرداب هر دو بسته بودند. او چهار تا لولای دریچه سرداب را باز کرد. بعد همان گونه که قرار رمز گذاشته بودند با مشت به دریچه زد. ملک آرا دریچه را باز کرد. هیکل درشت ملک آرا هنوز درون سرداب کوچک را پر کرده بود. عین فیل دست ورو نشسته که در قفس کرده باشند. ملک آرا هنوز با کلاه و تمام لباس بود، اما چکمه هایش را درآورده بود. بدخلق و تمخو توی سرداب میلولید. دخمه سرداب را بو و دود تریاک سنگین و تیره تر کرده بود. او با جاوید مثل دیشب بد اخلاقی و بددهانی نکرد. روزنامه ها و اساسه و خوراکی هایی را که جاوید آورده بود از او گرفت. پرسید تازه چه خبر مبرهایی هست بچه؟ جاوید گفت همه جا آرام و عادی است تا این ساعت. ملک آرا گفت باریکلا همین روزها آبها از آسیاب می جاوید چیزی نگفت. او هنوز توی آبنبار پای دریچه آهنی ایستاده بود. لیلا و شاهباجی بویی نبردن؟ نه. اون حیات چی؟ حیات سریا هیشگی بویی نبرده؟ نه. ملک آرا پوست خندی زد. روزنامه ها را گذاشت بغل دستش و خوراکی ها را گذاشت جلوش. و عین سگ سپوزه مشغول بلعیدن شد. جاوید گفت که فردا شب چند تا بطری عرق و شراب هم پیدا کند بیاورد. باز مقداری پول به سوی بالای پله های سرداب انداخت. جاوید پول را برنداشت، با این کار موافق نبود. دنبال عرق و شراب رفتن دیگر زیادی بود، وانگهی این بی‌مبالاتی بود، ممکن بود میان مردم شک و بدگمانی به بار آورد. اما ملک آرا او را مجبور کرد پول را بردارد. گفت که جاوید قول داده بود از او نگهداری کند و ملک آراب بدون عرق و تریاک نمیتوانست زندگی کند. روز بعد باز مامورین دیگری به گذر وزیر دفتر آمدند. این بار خانه سرعی خانم را بیشتر گشتند و با دکتر کیومرس خان و سرعی خانم ساعتها حرف زدند. مامورین به جاوید و کلفتهای این حیات کاری نداشتند. کسی البته کوچکترین بدگمانی نمیبرد که ملک آرا با آن دبدبه و کژکجه ممکن است پیش نوکر و کلفتها پنهان شود جاوید همچنین این روزها میدید که فشار از بالا بالاها مقامات دولتی برای دستگیری و محاکمه ملک آرا زیادتر شده است و حالا میفهمید چرا ملک آرا آنقدر ترسیده بود در روزنامه دو سه روز پیش خبر فوت یکی از رجال فاسد پیر را چاپ کرده بودند که در زندان مرده بود یا کشته بودنش، اما جای ملک آرا اکنون در سرداب سری محکم بود که نبوغ و پدر سختگی ملک آرا را هم می‌رساند و با آن گنج هنگفتی که او از دوزیها و چپاولهایش با خود برداشته و فرار کرده بود. جاوید ساعتهایی از دو روز بعد را هم با رفتن به جاهای دور شهر و خریدن خوراک و روزنامه و سایر چیزهایی که ملک آرا خواسته بود گذراند زرداب کم کم داشت به تمبل برای کیف و ایش و نوش تبدیل می شود. کاری که ملک آرا تمام زندگیش کرده بود. جاوید تحمل می کرد. در حیات بیرونی او سعی می کرد فض را عادی و همیشگی جلوه دهد. حتی لیلا با آن چشم های بدبین و غریزه های تیز زنانش هنوز بویی نبرده بود، گرچه انگار حس می کرد که جاوید یک جا سرگرمی تازهی دارد. به ویژه وقتی جاوید که حالا پول و پله بیشتری توی دست و بالش بود، به لیلا زمزمه می کرد که اگر بخواهد به خراسان برود، جاوید حاضر بود هر چقدر بخواهد پول تهیه کند و در اختیار او بگذارد. لیلا نمیخواست به خراسان برگردد چون کم کم در کنار جاوید احساس ایمنی میکرد و جاوید اگر هیچی نبود آینده خوبی داشت. لیلا این را احساس میکرد. میگفت میرزا از قرخان که نصف نصف هوش و مغز و اصل و نصب جاوید را هم نداشت و در اصل خیار چنبر و کنگر فروش دولاب بود این روزها برای خودش چندتا تا دکان و خانه خریده بود. و حتی با استفاده از شغل اداری صبحهایش در وزارت دادگستری حالا داشت توی خیابان بوزر جمهری یک دفتر ثبت اسناد و املاک باز میکرد. لیلا به جاوید میگفت او هم میتوانست اگر خامی و خریت نکند و عرضه به خرج بدهد ده برابر میرزا از قرخان پول در بیاورد. جاوید گوش میکرد و مانند همیشه و برای هزارمین بار به او گوش زد میکرد که تنها هدف او در این شهر پیدا کردن خواهرش است. او هیچ آرزو و رویای دیگری نداشت. شب سوم که برای ملک آرا خوراک و سایر چیزهایش را برد، لولاهای بیرون را باز کرد، در زدن رمز را سه مرتبه تکرار کرد، اما خبری از ملک آرا نشد. دریچه از داخل قفل بود. جاوید چند مرتبه دیگر در زد تا آقبت انگار ملک آرا بیدار شد. آمد دریچه را باز کرد. سرداب بی هوا میان دود و میان بوهای این چند روزه تقریبا گم شده بود. ملک آرا برگشت پای منقل ولو شد. چشمانش پف و قی کرده و آب آورده بود. دکمه های کت و جلیقش باز بود، کروات و کمربندش را درآورده بود و ریش چند روزه ای داشت، کلاه شاپای قهوه رنگش هنوز روی کلش بود، در این لحظه که از خواب پاشده بود، نشه و لول بود، وقتی با جاوید حرف زد و فهمید بیرون خبری نیست با یک خنده یک آفرین بر شیر پاکی که تو رو خورد گفت و برای اولین بار پس از شب اول به جاوید تارف کرد که وارد سرداب شود. جاوید از او تشکر کرد و گفت بهتر است برگردد تا بقیه متوجه غیبت او نشوند. ملک آرا گفت بیا تو پسر جون. بیا مردک، ببین، نگاه کن ما کجا بودیم، به کجا رسیدیم. بله، از توی آب سرد آبنبار خزید بالا و روی لبه درگاهی سرداب نشست. اما وارد سرداب نشد. کیف پول و طلا و جواهرات هنوز آن گوشه بود. شمشیر هم روی حسیر. ملک آرا یک زانویش را بغل گرفته بود، بادی به گلو انداخته و داشت یکی از شعرهای ایرج میرزا را در باره شب و تار بیتبیب و پرستار زمزمه میکرد. کرد. جاوید او را نگاه کرد. سه شب پیش، نخستین شبی که ملک آرا اینجا با او حرف زده بود، جاوید احساس کرده بود که در مقابل این مرد کوچک و گم و گیج است. حتی لحظه ای که ملک آرا هفتی را توی دست او گذاشته بود، او انگار میدانست، هنوز زندگیش در دست این مرد بزرگ گرفتار است. اما امشب او ملک آرا را انگار یک کرم خاکی کوچک و زبون می دید. ملک آرا گفت پسر، می دونستی آدمی زاد تخم مرگه؟ جاوید گفت بله ملک آرا گفت از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن و روده درازی ها کرد. جاویب این جنبه شاعر مسلک ملک آرا را البته هرگز ندیده بود. حالا از دهان ملک آرا می شنید که شازده قاجار خیلی شاعر دوست و شاعر پرور حتی فرهنگ دوست و فرهنگ پرور بوده. و خانه و کاشانه و بساتش همیشه به روی شعره و ادبای ایران و ممالک خارجه باز بوده است. امشب سیبیل‌های های آویزان خود ملک آرا به صورت او ناگهان حالت حضلیات کسیف ایرج میرزا را داده بود. بله و دیگر چیزی نگفت. ملک آرا تنها بود گوش مفت میخواست. جاوید نشست و گذاشت ملک آرا از ایل و تبارش که از سوی پدر به فتح شاه و از سوی مادر به سادات و روحانیون کازمین میرفتند و دستخانی کند. بعد شنید که ملک آرا از خدماتش به مزفر دین شاه و مشروط خواهان قلوف می نماید. ملک آرا حتی جاوید را به راز بزرگی از شاهان قاجار آشنا کرد که فقط خودش و چند نفر از خیلی خیلی نزدیکان سلطان صاحب قران از آن با خبر بودند. ناظر شاه از بچگی سرش گری گرفته بود و کچل بود و برای همین بود که هیچ وقت بی کلاه راه نمیرفت. پنجاه و هفت صفحه دویست و چهار سر تا سر هفته نخست شب و روز اعصاب و امیدهای جاوید در لبه تیغ بود روزها در انتظار پایان کار ملک آرا و دنبال کارها و خرد فرمایشات او بود شبهای یا بیدار بود و گوش به زنگ یا می آمد توی باغ بزرگ که همچنان سیاه و خاموش و متروک بود قدم می زد، راه می رفت فکر می کرد. یک شب نیمه های شب که توی اتاقش بین خواب و بیداری دراز کشیده بود با ترس پرید و فکر کرد انگار از آن حیات صدایی شنیده است چراغ بادی را برداشت و پاورچین پاورچین از توی سیاهی ها آمد باغ خالی بود باد تندی درخت درختها را به هم میزد یکی از نافدان ها شکسته بود و باد آن را با بیمبالاتی به دیوار می‌کوبید. مطبخ کوهنه خالی و سیاه بود، ته انباری هم خالی و سیاه بود، از دریچه نگاه کرد. آبمبار هم با یک وجب آب سیاه رنگ و بدبو مثل همیشه سر جایش بیلمان مانده بود. رفت توی آبنبار، دریچه آهنی پشت ستونها بسته و لولاها کلون بودند، گوشش را پشت در گذاشت. صدای خور و ملک آرا مثل خورناس خرس خونسار از پشت دریچه آهنی می آمد و میان دیوارهای خالی و سقف سمنتی سرداب می بیچید. جاوید دستش را روی سینه و شکم خودش گذاشت، انگاری که جلو انفجار و بیرون افتادن قلبش را بگیرد، تمام اندرونش از این همه دلهره ها و ضربه های عصبی پایان ناپذیر بدتر از تبل توهی و کهنه و درد بار شده بود پروردگار من اشو زرتشت چه وقت این درد سرانجام خواهد یافت فقط کافی بود یک دفعه که آنجا توی سرداب میرفت یک میله آهنی با خودش ببرد و توی مخ ملک آرا یا در یک لحظه شمشیر را بردارد از غلاف بکشد توی سینه و قلب ملک آرا فرو کند و خودش و همه را از دست او رها کند اما افسانه چی اوه افسانه افسانه افسانه باز هم تو همیشه تو کجا هستی چی هستی از میان باد و طوفان باغ صداهای نافدان شکسته و تاریکی دالان به اتاقش برگشت صبح روز بعد باز به گود زنبورک خانه رفت و باز از این و آن سراغ ابوتراب را گرفت یکی از کسبه ی سر کوچه به او گفت یادش نیست از کی شنیده است گنگار ابو تراب در مریضخانه فیروزآبادی در شاهزاده عبدالعزیز نزدیک گارد ماشیندودی افتاده و مرده است یا در حال مرگ است اما مطمئن نبود و اینها لابد باز حرف بود شب به خدمت ملک آرا رفت. ملک آرا باز لول و شنگول و راحت عین تاپو بالای سرداب روی مخدش نشسته، پاهایش را که میگفت درد میکرد دراز کرده و شکم گندش را عین مشک مولان ول کرده بود و فرمایشات تازه داشت. اول اینکه از شیر آب خلای اختصاصی کوچکش عقب سرداب آب نمی آمد. از جاوید خواست آبنبار را آب بیاندازد، به اندازه درست تا دو وجب زیر دریچه سرداب و بیشتر. جاوید گفت چشم، بعد نسخه دوایی داشت که میخواست جاوید آن را ببرد بپیچد. گفت که دوایی کمر درد و دل درد و بواسیرش است. جاوید گفت چشم، گفت که باید نسخه را پیش دکتر نزحت ببرد و جاوید این بار گفت نه. ملک آرا گفت که دوای آن نسخه کمیاب بود و فقط دکتر نزهت داشت که حالا معاون وزارت بهداری و محرم و رازدار ملک آرا بود. جاوید باز گفت: نه. او هرگز پیش این مرد نخواهد رفت. ملک آرا دکتر نزهت رجاله دروغ و پست را که یک شب مثل دزدی ناجوان مد به دختر او تجاوز کرده و او را آبستن کرده بود حالا محرم و راز نگهدار خود تلقی میکرد. لابد به این دلیل که دکتر نزهت معاون یک وزارتخانه بود و با او سابقه خیشی و آشنایی داشت. جاوید گفت من پیش این مد نخواهم رفت. او بود که یا خانم را تباه کرد، نه. ملتارا گفت، این بچه بازی ها را بریز دور، گذشته ها گذشته، اون حالا از رجال مملکته، هر کاری کرده ارزشو داشته. دوزی که نسیم را به دوز است برو پهلوش، نگو من کجام، از قال من بهشون خیلی با ادب سلام ارز کن، بگو من وسیله قاصد پیغام فرستادم. و بگو به کسی نگوید که من مطلقا در تهرانم. جاوید گفت، من نسخه را به پسرتان میدهم. ملک آرا داد زد، نه خرجون، کیومرس من ارزه داره؟ کیومرش به برف بشاشه برف آب نمیشه. منو نزحت بود که پس از نود و بوغی اون پست مدیر کلی را توی بهداری برای کیومرش پیدا کرد. به هزار زور، پیش کیومرش بری فاتحه منو خوندی؟ اون منتظر من سرم و بذارم زمین، ارس و میراث من و قسمت کنن، خودش بمیره، سرایی که از اون بدتر، اون که خب زنه، تکلیفش معلومه، ناقص اقله، فردوسی زن رو میشناخت که گفته بود زن و اجدها هر دو در خاک به، من چی کار کنم، از بچه شانس نداشتم، سرنوشت من و بچه هم اینه، این منه چهار تا پادشاه با من صلاح و مسلحت و مشورت می کردن. اینم بچه هام یکیشون که زیر شلاق و فلک ریق رحمت رو سر کشید. این یکی هم اول به زور و پارتی توی دارالفنون قبولش کردیم. بعد هفده سال فرنگ خرجش کردم. آخرش هم هیچ پخی نشد. اسم دکتری رو هم من خودم گفتم. که بذارن جلوی اسمش. چه میشه کرد؟ اینجوری شده. چیکار کار کنم؟ به کارخونه خدا نمیشه دست برد. فکر نمی کرد از دختر خودش اینقدر تصور غلط و بدی داشته باشد گفت: به هر حال دکتر نزهت بی دکتر نزهت. ملک آرا با ریشخند گفت: تو که نمیخوای ما رو با بلای دلدرد درد و کمردد و یوبسی بکشی جاوید گفت: نه مردن شما فعلا مطرح نیست به چشمهای ملک آرا نگاه نکرد فکر کرد تو به این سادگی ها نمی میری. ملک آرا صدایش را بلند کرد. دوا نباشه من میمیرم. جاوید گفت اگر کار به جاهای بد کشید من فکری میکنم. ملک آرا با اخم داد زد. واسه من تکلیف معین نکن که داغ عزیزت رو به دلت میذارم. میگه اگه کار به جاهای بد کشید اگه انچوچک. هه اگه خاله منم خواهی داشت خانده این میشد. بعد موضوع را تغییر داد و گفت. میرزا اسقرخان نیامده در خونه به شما چیزی بده؟ نه خیر، میرزا عصرها سرش گرم بنایی و محضر و ثبت اسناد هم باز کرده، منشی و ملا بنویس دارد، صبح هم که اداره است. ملک آراب با غضب به گوشه سرداب تف کرد. پدر سوخته ششصد تومان بهش دادم، خونه ها رو زودتر نقد کنه. دست دست کرد تا دولت خونه ها رو ضبط کرد. نامد شیستد تومنم خورده یه آبم بالاش جاوید خبری نداشت ملک آرا گفت کارمند داردگستری و محضرداری و منشی و ملا بنویس هه نوکر ما مخلصی داشت مخلصشم چخلسی داشت به خرچنگ گفتن چرا از چپ و راست راه میری گفت پیشرفت ما اینجوریه خاک تو سر کتلش کنن اگه زری بپوشی اگه مخمل بپوشی بازم کنگر فروشی خیارفروش و سبزی فروش بود. من آوردم عرقچین میرزایی گذاشتم رو کله کچلش. سواددارش کردم. حالا ما گرفتاریم. اون پدر گوشبر شهر شده. خاک تو؟ کلمه مترادف مدفوع از زبانش نمیافتاد. حالا کاردش میزدی خونش در نمیامد. من منقل رو کشید جلوش. بسات وافور را شروع کرد. جاوید که هنوز پای دریچه توی آبنبار ایستاده بود او را نگاه کرد. ملک آرا زیر لب داشت می گفت چون که همه سرانند دست از دوم خر به باید آویخت و سرش را تکان میداد. منقل را کشیده بود جلویش گلهای آتش را از زیر خاکستر بیرون می کشید. جاوید گفت من باید برگردم تا دیر نشده. ملک آرا حرف او را ناشنیده گرفت گفت با درد بساز تا به درمان برسی ای یارب. جاوید گفت تا فردا شب. ملک آرا سرش را بلند کرد گفت تا فردا شب پسر دوای من یادت نره. حقه و سوزن را توی دستهایش گرفت. جاوید هیچی نگفت. ملک آرا گفت حتماً و حکمان بهش سفارش کن به کسی نگه من تهرونم. خودتم بگو خبر نداری. بگو قاصد به تو گفته شازده تهرون نیست. اگو قوم یا اسفهونه یه دروغی هم سر هم کن جاوید سرش را تکان داد پیش از اینکه دریچه را ببندد آهی کشید و گفت آقا شما هیچ وقت در این دنیا جز دروغ چیز دیگری به هیچ کس تحفیل داده اید ملک آرا با زهر خند هلقومی باز برگشت به سرک را نگاه کرد گفت هم آره هم نه در این مملکت با این ملت بوز اخفش باز پولتیک زد حقه را در هوا تکان میداد. جاوید او را نگاه کرد. بعد ملک آرا گفت: مثلا حالا تو چه کوفتی رو را میخوای راست بشه بدونی؟ اصلا چی هست توی دنیای سفله پرور قابل گفتن باشه؟ ها؟ مثلا چی؟ جاوید گفت: مثلا این، شبی که خواهر من را فرستادید کن من شنیدم که همراه ابوتراب یک نفر دیگر هم توی کالسکه رفته بوده. ملک آرا گفت: خوب، این شخص کی بوده؟ هنوز زنده است؟ ملک آرا با بی سرش رو انداخت عقب گفت، من چه می دونم پسر، مگه من دیگه توی ریزکاری های ها دخالت می کردم، دلت خوشه، چه می دونم؟ بعد گفت، مواظب آبمبارها باش یا باشی ها؟ یادت نره. جاوید دریچه را با خش تقریبا توی صورت ملک آرا کوبید، بست. دختر بچه ای را به زندان به اصارت فرستاده بود و حالا زورش می آمد فکر کند چطور و با چکست و بدبختی اینجا بود که لابود این یک چیز را راست می گفت. میان باغ لب جوی آبی که از راه آب زیر دیوار شمالی می آمد ایستاد. این آب قسمتی از آب جاری از قنات آب شاه بود که به خانه ملک آرا وارد می و بعد از گذشتن از دو تا حیات به طرف جنوب محله و خانه های دیگر می رفت. سر پیچ جو آنجا که آب به طرف حیات بیرون می پیچید جاوید شد. زانو زد و دست گرد تو پی گونی پیچ شده ی راه آب آبنبار مطبخ قدیمی را کشید. آب را به جهت آبنبار سرازیر کرد. چراغ به دست برگشت آمد از دریچه آبنبار نگاه کرد. از لوله تنبوشهی که بالای دریچه چوبی بود، آب شرشر سرازیر شده بود. ایستاد، نگاه کرد، صبر کرد. مدت درازی صبر کرد تا آب به اندازه‌ای که میخواست و علامت زده بود در آبنبار بزرگ بالا آمد. و همانطور که ملک آرا گفته بود تا دو وجب زیر دریچه سرداب می رسید. اکنون آب به اندازه کمتر از یک متر بالا آمده بود و موج می زد و جاوید هنوز ایستاده بود نگاه می کرد. روح خودش هم هنوز در موج و تلاتوم خشم بود و آب سیاه که زیر دریچه سرداب بالا می آمد و می خواست آن را بگیرد و قرق و معدوم کند. طلاطم و انگیزی داشت و در چشمهای جاوید پژواک موج مرگ میزد. گفت نه امشب نه هنوز نه برگشت توی باغ و سوراخ راه آب آبنبار را بست پنجاه و هشت صفحه 269 و و وقتی از میان باغ به حیات بیرونی برمیگشت دیدن سایه سفید سفیدپوشی گوشه باغ ناگهان او را تکان داد زنی جلوه در دالان ایستاده بود به سوی او خیره نگاه میکرد. وقتی پیش رفت و سایه را از جلو دید و شناخت ترسش کمتر شد. اما دلهوره جور دیگری جای ترس و تکان اولش را گرفت. لیلا بود که با پیراهن خواب آن گوشه ایستاده بود مراقب او بود. جاوید به صورت او نگاه کرد. پرسید از کی تا حالا اینجا ایستادی؟ لیلا گفت خیلی وقته. چی شده؟ چرا بیدار شدی؟ لیلا پرسید توی اون انباری چیکار کار داشتی بجه؟ مگر ندیدی آب مینداختم مگه دیوونه شدی؟ خونه خالی آب انبارش آب میخواد چیکار؟ جاوید گفت آب انبار بی آب ترک بر داره هزار جور جانور می گذاره. لیلا گفت خدا پدر هرچی خلو دیوونه است بیامرزه جاوید مدتی او را نگاه کرد گفت برگرد برو، نصف شب نمی توی تاریکی راه افتادی؟ برگرد بخوابیم. لیلا را با خودش به حیات بیرونی برگرداند. وقتی به اتاقهایشان رسیدند، لیلا گفت که سرش درد می کند، خوابش نمیبرد برد. خواست پایین بماند، یه قوری چای درست کند. جاوید چیزی به مفهوم این که انکار خوبی است زیر لب گفت. خودش رفت به اتاق و در وقت خواب دراز کشید. نمیتوانست بفهمد لیلا امشب از چه وقت دنبال او آمده و تا حالا آنجا ایستاده بود آیا چیزی را فهمیده بود به چیزی شک برده بود لیلا چند روز بود اخلاق و رفتارش نرم و آرام و حتی انگار مهربان شده بود به طوری که جاوید حدس میزد دروغ و فریب تازهای در کار است البته او خودش چند روز اخیر مقدار زیادی به لیلا پول داده و او را به رفتن خوراسان تشویق کرده بود. اما او درباره لیلا هیچ وقت مطمئن نبود. امشب هم نمیدانست در مغز لیلا چه میگذرد و چه کاسه زیر نیم کاسه دارد؟ لیلا امسال خودش بیست یا بیست و یک ساله بود؟ زن سبزه و خوشبر و رویی بود و گاهی که به سر و صورت خودش برمی رفت زیبا می و هنوز تراوت جوانیش را داشت. می برود برای خودش در جای دیگری دور از این محله که اغلب مردم او را بدنام می دانستند شوهری دست و پا کند. جاوید شش سال او را هرچه بود روی دوش و روح خود حمل کرده بود. و حالا پیش از اینکه خودش تکلیفش را با ملک آرا روشن کند، میل داشت لیلا را هر طور هست به سر و سامانی برساند. لیلا پیش از این گفته بود که او به یزد نخواهد آمد. در اینجا هم به زودی مستخدمین را بیشک بیرون میکردند و در این حیات را هم قفل و و موم و تمام میشد. او درست نمی دید که لیلا را طلاق بدهد و در تهران تنها رها کند. هرچه بود او نام و حمایت خودش را روی این زن گذاشته بود. لیلا به اتاق آمد. برای او هم یک استکان چای آورد. جاوید چراغ را خاموش کرده و اتاق در سایه روشن مهتاب فرو رفته بود. نیمخیز شد چای را از لیلا گرفت. از او تشکر کرد. استکان و نلبکی را روی جاجیم پهلوی دستش گذاشت و وقتی دید لیلا هم آمد گوشه دیگر اتاق گرفت نشست خودش هم به سوی او قلتید روی یک آرنج تکیه زد انگاری که به او بپیوندد لیلا گفت آخه کی تو گرمای چله تابستون تو اتاق میخوابه بدتر مریض میشی جاوید گفت من اینجا آسودم زیر اون لاحاف چیزی نیست بعد پرسید چرا دام دالان ساکت ایستاده بودی هیچی نمی نمیگفتی مرا نگاه میکردی لیلا گفت هیچی. راستش را بگو بابا خوابم نمیبرد اومدم پایین کوزه رو آب کنم دیدم سرجات نیستی اومدم دیدم مثل دیوونه ها داری آبنبار حیات خالی رو آب میندازی پس چرا توی تاریکی ایستاده بودی کمین میکشیدی لیلا مدتی ساکت ماند، انگاری که نخواهد آنچرا که در فکرش داشت افشا کند، بعد گفت